عمل احلامه و خود ایشان جواب دادن که از این جواب و اون اشکال رو مدرم محسود بیان کردنی و خداسش اینه که مدرمون احلامه در برمه هشتم که این استدابه رو جرد کرد یعنی این استدابه رو انجام واقعا راهی این برای این تحیل یعنی به اصطلاح این شراحیدی رو که اصطلاحی ها میگنم و موسیقی بردار که پیشیدن این ها در, در موجود نبود راه منحصه بود به تحدیل رجالی وقتی موجود نباشه راه منحصه بود به تحدیل رجالی هم بود که احضا در پر دو بو هم به اصطلاح و این صفه جواب هر مسئله اندی هم در که هنوز اصطلاحاتی موجود هنوز و شواهد در زمان ما موجوده. موجوده و عباراتی رو عندنا شده بعد از هنوز عباراتی را می و در این شواهد این خلاصه دو جواب و این به اصطلاح هر این مطلب هم راجب اصل ما صنع اشکال را هم که را رفتن رو که اخباری رفتن اون هم خاید اشکالی تدوشون اشکالی اما به رو که علامه بودن در این کار یک بود که در از که اون را را پیش رفتن بعد برنا بذاشن حدیثشون و فکرشون رو در همون را اما ما در برده هشتران نمیتونستیم کار رو کنیم چون حدیث و فروع و اصول و کلام و تفسیر و مجموعه معارف دینی ما قبل از اعدامه کارسازی شده بودیم نمیتونستیم کار رو انجام که با این اصطداق جدید که بحث داشیم ولی اتامه کردیم عملا هم به انزامه ایدهی برگشتن به بر همون میراس های خودمون. این اجمالا وارد این اشکال را هم آیستان بسار انجام بودن خب این اشکال وارد این ساخن ملاقم به این که انشاءالله آن تایین کرد که اصولا مطلع روی که در اعلان رو گفته اصباح خودون مطلع رو شنید ولیشون که انها مطلع رو هم که مطلع رو که دارون فرمولن درست دید شون الان هم موجیه تربودی خبر رو مدره کردن یه... یه تفصیم بندیه رو انجام دادن اولا مجموعه تحبوزی یا برگشتش به دلاله آیات مثالی نبر و آلی نفر یا برگشتش مجموعه روایات یا برگشتش مجموعه تیره صاحب و اصحابه این شان رو این خلاصه یکی دلیل برای کسانی که باید مجموعه خبر هست خبر بجازی یا مجموعه آیات یا روایات و یا سیره این عملی پیغم به از صحابه رو به از صحابه این معلی موسن خلاصه ایز بذاریم و انشاءالله قاعد آمد که حل تدری نا بزن یعنی حل تدری تام نیستند و اثبات رجی تعبونی خبر خبر عرض مثلا اصافت کار مشکلیه اصولا ثابت نیست شارع محدث را به مسئله خبر روش خاصی به شوش بوده پت رو کنیم ما از داره که هم برش اوحالانی همون داره هی که موجوده به این مرده با اون تحجیمه شواهد وصف ببرترده اون چهاره همی هستیم اینا نهیم نشاره تحول رو روی که رو رو رو اگر آدل تیپی گفت ولو وصف پیداهش انجام بده خوب درده این فرده بین این ممضا اول روشن بشه پس این ها مثل اندامه محسرت بروجه تحولی هستند بر محنای رضاقت و محنای ادالت به این سبحش و این شعالا خواهد آمد که این سبحش کامل میزه هر سبحشش داره و به شور موجه از شعره مقدس خاصی نداره همونجای که اوغنی خاصی که مثلا شما بعد در موضوعات خارجی چون اجموع هم بذاره بازد و بازد بازد یعنی شهادت دو هست رو رجع براندازی در موضوع خادشی اما در غیر این موقع ما دلیبی نداری که شهاده محدث تحبوز کرده باشه به قبول قبر واحد قبر حمل واحد و شواهد جمع هم همون و اوالایی چیز خاصی رو ما احساس نمی کنیم و این ساله از خواهیم که دلالت و آیات و روایاتو اینها یا سندن مشکل درن یا دلالتن یا هر دو یا الان این, را. این یکی دو موگیم که مرموهای برویی خواهدم بروجه تعبویی خبر سره به مریا و اوغدا و شارع امزاد کرده اینجوری این را اینشانه اصفات خواهیم کرده که اوغدا توی این موارد سیره ندارن سیره و اوغدا باز نفری باشه باشه چندی سیره ای ندارن اینکه به ما و سره اگر محلی گفت تعبدن هر دور را قبول بدون بکنن بدون اینکه حصول به د به دونی که این صبح پیدا بشه یا سیره سیرهی بنافقی دارن اقلا می این شباب صدیه تصفه این اولا این این دوم دو بود این, این دو دوم هم برقیه خیلی نشکال که اولا عدل این دوم هم عدلیه می نه خبر سقه که ما می خبر که افضلی از همه و دواهر کلما ترجامه هست و سالتا اگر ما در فرض را قبول بکنیم انسان به نتیجه هست یا محتمل یا غیر محتمل تو دیگه اینطور یه از کلم عواطیر مرموستان دیگه نمیفرموندن مثلا سریع هسته کلا هسته کلا هسته کلا هسته کلا چون یه شبه گفتن یا شامل خبر میشه محتبر یا نیمیشه محتبری یعنی به قصد یعنی عدله یا به یا ادارت یا چی که هست. دیگه این چاره است که هست صحیح باشه و حسن باشه و نمیدونم صحیح خودجر باشه و حسن خودجر باشه این در مثلا عدم معارض مثلا که عرض این تقسیم ربایی از خودجر حالا برای تا عدل و رو شما ادله لحجیت رو عمون دیگه این تقسیم غباهی از خیدم از زمان بزا سرف و مجلس مثل مجیل ها هم اضافه گردن من به کلام میشنم چون ما دستان نداریم خیلی وقت شما رو بین ارزان رو میگهیم تنشتا شده از تربیری هم بهش اضافه گردن شد حالا تا. پنشا. البته یک تقسیم بندی اصلی دارم یک تقسیم بندی های فرعی تقسیم بندی اصلی 28 شد در درایو شهید اومده در اهل این تقسیم بندی اصلیشه تقسیم بندی اصلی چه تا به قول بدر درها ما 5 تا سنی اوردی و حسن و کاری این داخل میشه من این بحث خیلی مشکل هست هیچ پس یک تحلیل رجالی که علامه مطرح در بودن با فرهنگ چیه نمیخورد این اشتاد دو خود این مطلب که ما برگردیم به حدیجه تبدوی خبر چه اجالت حال چه حضر ساعتی که مثلا برگرد بختم این اصلا ثابت نیست نه از آیات در میاد نه از بازا و نه از سیره عملی سه حالا تبدیلی که این مطلب ثابت هم بشه این چار قسم و پنج قسم ثابت نیست این به شما بکنه خبر با به هست. یکی شما مطلقا قبول میکنه یکی شما مخیلن مقبول این هم ثابت نیست یعنی این از ادله در نمیاد. آن اصولا خود تفسیر صحیح و خود تفسیر حسن حتی در کلمات احلی سنت مخلقه چون این یه چیزی نمیده که روایتی درش باشه شما هم هم به خودو برد رسوندن اگر فرصتی بود من چون خیلی اعتقادان هم که بارش میخوایم چون سعی قال کلان صحیح این طور هستن قال گفتن اولوالیست گفتوی با قالو معروف هم رجال و نحن رجال اینایی ای چارز واضحی ندارن اینایی یک مقدار در حقیقت سعی کردن خبر رو روی مقدار شواهد و فرای را بی کنن این درسته. درسته. این د مثلا و بندی این شواهد و قرائن رو ما بیلد دستبندی می‌کنیم. گاهی در یک خبر تا درصد میاد چه؟ وقتی در یک خبر 80 درصد. وقتی در یک خبر تا درصد. این شواهد در میشه یک بندی کلی کرد مثلا در قران شوت کتاب آمده باشه، ایده بهش داده. میشه اینا یک کاری کرد. این تقسیم بندی شواهد درست نیست. و در حق اهل سنت هم بر حجج تربیتی مطرح کرده. با این شباری اوهلا سعی کردن این کار با تحسیم بکنن بله اگر اگر از تمام بشه یا تبر خودجیت یا خودجیت نیست چون معیار خودجیت اگه باشه خودجیت نماشم نیست فرض تعارض هم باید وزاره خودش برمسی بشه پس این مثلا این این لینه یک چیزهای اهل سنت هم اصطلاحاتشون وقتی کنسدی شده میخونیم اصلاً این یکی کسی یقطر عنیسیه، این یکی کسی یقطر عنیسیه، بالا یقطر، یک کسی لا یقطر عنیسیه، یک کسی یقطر عنیسیون تنها، اثراتش این اصلاحات مختلفی دارند، راه‌های اینها به نظر من شواهدی آورده. درست است، اجماعاً درسته. اما این چهار تا نمیاد که این چهار تا که حسن و موثق و اینا توش در نمیاد. چون این شواهد یک همده کنترل داره اما حدود به کنترولی هم زیاد داره نمیتونیم درمیه هم دوییم راسته دای شواهد فلسون تا 80% دای شواهد دو حالیستان اول درصد دای شواهد تا 60% باز این شواهد 60% جنس هاش مفرم مکنه راسته انصافا در حمل من بوده ما این نقطه وجود داره اما این تقسیم بندهی درسته این لاجه به قسمت کلمات علامه و اما راجع به اصراری که آن اخواری ها دارن و شوارد که خوندیم هم درداشت متأسفانه کلمات این ها هم خالی از تحبیل یعنی واقعیت و محکس نگرده ما باید به قبول بکنیم که خودمای یعنی اصحا روی شواهدی که معذر تاریخی داریم و کاملا واضحه خیلی رو نزخه کار کردن کارهای زیاد شده یعنی پرسی مثلا کتاب حریض رو روی او کار کردن وگاهی اوقات بوده که از کتاب حریض 3 نصفه یا 4 نسخه یا 5 نصفه بیشتر نبوده و همون 4-5 نسخه کار کردن اما این کارهایی که شده یک نواق نیز اولا ممکنه که در یک نسخه ربایتی بوده در یک نسخه اصلا نبوده چون از کردم دقت رو کنید کتاب حریض در کوفه نوشته شده ما الان وقتی مواحث فهرستی و مثل فهرست نجاشی یا فهرست شهر توسی رو نگاه میکنیم چیزی که برای ما ترکیب آوره اینه که موظم این کتب ما مال کوفه هست لکه خود مرموم نجاشی و حتی شهر توسی خب اینا برداد بودن آزتا از برداد به کوفه را نزدیکی نگذیکی ها گاهی مستید سی بین برای اون سی خب عادتاً باید این نسخه را از راه کوفه نرد بکنن موظم این کتاب رو میدن از راه رو خوب میکنن یعنی دور میشه یعنی کتاب به این نزدیکی از کوفه پس همین کتاب سکونی پاید روزا رواتش خب کتاب سکونی میگن آن مشکل بوده معروف بوده بسیار خب این در کوفه نرشه شده چرا از کوفه به بغداد نیامده؟ خب آمدنشن که کاری میگن کتاب مشهور اصحابش عمل کردن خیلی خوب بسیار خوب واقعاً بعد از خوفه بیادی هرگاه شما ارام فهارت نباه کنی فهرست نجوشی فهرست شهر میان به نسخه ابرالین حاشمی در کم بوده یعنی از مشاریخ بغداد میاد کم توسط ابرالین حاشمی در بغزاد میاد و هنگر که بیان مولانوقتی بشیم بگیم ابرالین حاشم فوسیق سریع نظاری بگیم واقعی چون دو تا اینا چند با قرار اینفاد کردن به خاطر هم خوب تصویر بشه همین اخیرا ما بحث روی مفضله نمر داشتیم نجاشی چند کتاب به مفضله نسبت داده شده یک کتاب یکی مشترک و یه مثال چرا چون نجاشی برده به اون اخیری مفضل با این شهرت باشه این باید از کوفه یاد به یاد گیر نه وقت این راه دوره پیدا بکنه یعنی ایشون اجازه هم داره خب ترسال استاد استادی که اجازه داره به نجرد شیفتوسی اجازه نداره شیفتوسی هم اونا رو نداره مثل مرحوم سال وسائل اتباری هم میگن آقا مفضل اونا شخصیت محروب بردی نجرد شم شریف صناعت 6 تا کتاب مثلا بوی نسبت داره خب بینیم شرکت شیفتوسی از این 6 تا یکی رو نسبت یکی چرا؟ چون استاد نجاشی که اجاز به نجاشی شیخ رو ندیده چون من چند بحثای تو بحثای بحث بحث بحث فیدرسی هم شیخ خوزی جمعی مشاهده نجاشی رو ندیده چون نجاشی پدرست از علمان بوده خودشم متولده برداده تقریبا از همون سنین بچهگی در همین مناظر علمان رسو آمد چون هم شخصیت علمی بوده اصلا ده ده و ده ساله بوده خونه یا حارم نوسای طلاقبری بیابده اما شیخ توسی چار سد و هشت شده اصلا یه ایده از مشایش نجاشی مثل نعیاش مثل صاحب نمجر بلانه سهل رزی اندار دستان اجازه هست چار شده خطیه که از سهل رزی نمونه باید جردی بگونه از گذاری کسی چون سیدارزی چهار سدو شیش وفاتشه شیخ توسی هم چارسدو هشتو بقداد آمده چطور میشهد نقل بعد بل شیخ توسی از شیخ مفید نقل میکنه از سید مرتزا نق مکنه سیدارضی خیلی جمع بود سی سال بین این دو برادر فاصله در وفاتشن سیدارزی سی سدو شیش سید معتزاد سی سد سی سال فاصله داره دقت میکنه عدها از مشایخ هستند که اصولا شیعه خصوصی اونها رو نکرده. و لذا این منشأ شده که ادعی از خطب در کتاب نگرشی آمده در کتاب شیعه خصوصی نیامده. همین اخیرا متعرض شدیم. از این بحثی که تا حالا در میان علمای ما در مباحث رجالی مطرح نکرده. چون فکر می کنم منظورم از علم مخی ناقصه. یه استفاضه در درشناسی انجام نبود این رو اولین بار مأمون خستنی مطرح می‌کنه. شاهری خستنی توی قاموس مثلا یک کسی رو شیخ نجاشی متعرض میشه شیخ توسی نمیشه فرد یه بعد و رو شیخ رو کنید خفلت رو همه به شیخ شیخ خفلت داره ما توضیح که آه خفلت نهی شیخ توسی استاد رو ندیده شیخ نجاشی مقدار زیادی از مقدار مقتنابهی از آثار خودش رو از ابن نوح که واقعا شیخ داده شیخ توسی وقتی بغزاد میاد ابن نوم بوده اصلا شیخ وفاتش بعد از شیخ توسیه یعنی 409 هست و ابن نوم 409 هست یک سال بعد از آن شیخ توسیه بغزاد لیکن چون در بسره بوده شیخ پیش اونه بوده این و به نحره کتابت و نامم از اون تغازه نگرده چون در اون وقت این که از شیخ معلوم میشه ابن نوح متحمل لعز از آراء فاسده بوده. مثل روزی قائل به روی خدا هستش شو میاد چه میگه فلان یک ت벌 روایی یا من با اون رو نمیدونم نقلان از مذاهب فاسده هم در اثر بود بردااد نبود هم بعد از مزارع فاسده الان ما چه کتابی داریم چه علما ان شاء الله ابن نوح داره این ابن نوح ها هیچ خود این موارد ادبی نداره شهر نداره تو درمت که از رو بخلط آمینه در خلال بخصا بحثا. چون بخصای فهرسی متستفانه در وضعه ما کار نشده روش نهایت کاری تشجیده رو اسامی فکر کار شده توی این مدهد یه کار باشده بخلط می پس بنابراین این مطلبی که ایشان اینطور برپنبار کرده اینطور نیست مثلا مرموم عیاشی یک مناسبت درکتار و کشی آمینه ایاشی ازش تشهر ساعت میکنه میگه بله بعد, بعد شخص نام هم اصحاقی محمد بسری بوده در بردام عیاشی میگه اصحاق بردام بشوخم یک کتاب برم در یکی اسم یک کتاب از مفضل ازم اومداد ببیدین خود این اصحاق مترم به غلوب و اتفاق غلوب به محرف ایاشی میگه کفتر باز بوده کفتر بوده کفتر بوده در خواهی کفتر رو نسل یه کتاب مفضل رو برمان در روز من در استنصاف نشد ببینید وقتی کتاب تو بغداد استنصاف نشد یعنی چی؟ یعنی کتاب بیگه از دوره علمیش خارج میشه نجاشی هم مجبور کتاب مفضل از خون بیاره. خود بودرا خود به قطعه مفضل در اون زمان زمان ما الان ساده اون نجایت و ساده در اون زمان کن منطقه هست آز بجنودی بکنم از بجنود ما که ما هستن هزون شرط بشن هفت ماه سو میشین میرسن می هفت ماه دو ما یک کتره هست سو میشین دقیقه بکنم این صحبت این حبانی هر هرچین مکان دور شد خواهی نخواهی جنبه های تحبت بیشتر میشه جنبه های مقارنه کمتر میشه بیان بررسی بکنن تحقیق بکنن، این سری داره یعنی از حال ما این نوکشی که ما ازش می‌خویم از از حال ما نشده که چرا این میراث وجهی ای که از کوفه به بکن به از بیاد تا اون میراث همین نداریم که آمدهای حالات خاصشون این خبر داره بحثی تاریکه بیشتر دیگه لذا این اینکه ما یه مشکل اساسی که داریم یه دوباره معروفی هست که شلوغ است لج در سفر ظاهر شخصت عظیمش این در مسی است که تا بحریزه اینو نه مردم کلی نه هر جایی رقم شده کلی که مردم ازش چیزی باشه منم که بلکه در شیار مردم کرده این مطلب که حالا سفاق و سوات حریزه و تعارف اصول یای خودش اما از همون اول هم روایات مورد بررسی قرار گرفته اشار اینه یکی نص متعدد بوده الان ما اون نصف به دست ما نرسیه تا از جزه بعضی هاش بر اثر اختلاف نصف بوده ما از کردیم نجاشی میگه جناب آقای احمد ابن حلال عبد که این مشته روایتی که نرمون میکنه به این داره چیزی نرمون میکنه در مصاله گه نیست در مصاله گنیز. نیست خب اینو ما گشیم پیدا گردیم الان از ابن عبی عمر نرمون میکنه کسی که نرمون یک مبارد واقعی در ما به سوم در مساعد آماده دو تا محطن رایی ایک احمد اون متن احمد ابن, احمد ابن نیم سطر زیادی داره همون را با همون سنتیس دیگه نرگل اون نیم سطر زیادی اون همین به وجود حالا هم با متاسفانه با منجمال های دیگه رو گروه شده مثل همین اجازه کتاب محمد شیخ یه اخوانی به کجور به الا محبان فیامن قلوب اون تخلیف حالا اون قلوب و تخلیف چیه چون که بیر هرز اون را ما نبیدونیم از سرم یک مقدار این ها مقدار زیاد نسبتا به چون شیخ نداره نجاشی داره اون کتاب و تختلف ها روایت دید اون کتاب یختلف به خلاف دوان بعد مثلا لحظ کتاب ها نسخه تا قومی ها نسخه کوفی این اگر مراد اخبارها اینه که این شواهد الان موجوده خیلی این شواهد الان موجود میدید چرا با گشتن زیاد میتونیم یک مقدارشو پیدا بکنیم و یک نقطه دیگری که باز هم به نظر ما خیلی معصر بوده و ترد جمع بشن شده ما احتمال می‌دیم که در همه موارد نه یک داره ممکن بود یک نفر رو به لحاظ کتاب و به لحاظ فقه ما تایید بکنیم اما به لحاظ روایات تایید نکنیم این یک نقطه است چون چیزی در اندر دهنده هست بده یعنی مثلا نگویید که او تون صحبت میکنه خیلی انصافا در این حد از اون ور آقایون اینا خبرهای وایات اون زیاده و معمول بهان این اخیراً برای من این فکر بیدا شد که احتمال داره تنبیه نجوشی واسه به کتب منصوب معلقات مفردل باشی خوب دلخ بکنیم غیر از رقایات معاملونیون شخصیت مفردل دوتاست این در کتب الان هم یعنی که من در خدمت نستم خیلی از میخوام نجوشی هم نبشه مجموعاً یه مجموعه ایست مجموعاً به مفردل نسبت شاپن کده از سراغ از علیه شریف هست یک که های عجیب پر از لاتا الاب سراحت هستوش افکار تناسخ دارن من اما اصلا متحیر هست مثل مثلا در این کتاب سراغ الکسوخیه و المسوخیه و رسوخیه این اصلاح تناسخ و رسوخ و, و مسونا داره که یه عجیبه حالا یه واقعا در اون قرن زبون احتمالا بعد شده یه مقدار زیادی از این روشه ها چرا اونای علوی ها و باطنی ها در روز و مروز و جاود حک ساختمان ما نیست یه مقدار الان همین الان آثار علمی و کتاب ها منفزر است داده شده که مشتمل در کک هست مشتمل بر تناسخ هست الفاظ بی معنایی و محتوا هست یک نوع تعویض و باطن گرایی از میسرات است مولانا واقعاً اما از اون در کتب و فردیه ما روایات پراوان نسبت از مفضل داریم این هر با نیست لذا ما آمدیم ببین شخصیت مفضل رو جدا کردیم مثلا جاهایی که محمد ابن سمن ازش نحرم کنه زادن کتابشه جاهایی که دیگر اصحاب حدوده 20-30-25-30 نفر -20 ما از اصحاب دیگه داریم که از مفضل ما این اعتقاد پیدای کردیم که شعن مفضل در تعلیفیه چیه؟ شعن مفضل در روایات چیز دیگه و مشکل چیه؟ مشکل اینه مثل مرمو آرخویی اون عبارت نجاشی که در مفضل هست اووردن به کل روایات داده اون تدریف شدیه دیگه چیه؟ باز آهایانی که مثل اخواری ها هستن میگه روایات مفضل در چه هم قابل قبوله؟ تمام این روایت مفرده را آمده شده که دیده آثار مفرده ده. اصلا ممکنه روایت مفرده نباشه یکی از اصحابتشون مفرده ارکر در یک شخیت جمجالی اجتماعی هم بوده یا به اسطلاح بعضی خودمان بخارم قلوب سیاسی یه انسان فعالی بوده این تا اوائل تا قربان حدود اصلا زمان اوائل امره منصور دوانیقی هنوز allele از شیعه خیال با فعالیت اجتماعی مثلا تا اختلاف دهلیزی برگرد به ما صادق هست دیگه مفضل مثلا واقعیتش یه کار مفضله است مخضره تخصصش اینه دیگه بعد از جریان محمد بن و ابراهیم برادرش که کشته شدن دوات ظاهراً دیگه مفضل به قول معروف فارسیون گوشاش آموزش این, این را به جای نتیجه درست مفضل زمان نوستن جفن هم هست هیچ عنوان نداره تمام این هیجان و که شما از مفضل میدیم ما زمان امام صادقه زمان امام نوستن جفن شما ما در مقینه با امام بهت کرد و برگشت تو دیگه از مفضل خبری نیتر ام اون مفضل شروع و فرنشات و اون داره که امامی مبلغی خود خواستن از این تفتر با در مفتر بذاره جلی کرد مبلغ ها آماده کرد. هم هم هم هم زمان امام آ تو زمان موسیقی جرفر دیگه این ایک نشسته مشروب کار خودش. حالا واقعا اون که محمد ابن سنان هم همین وقت با این برخور کرده محمد سنان ما رو رو درک میکرده احتمالا ازده از کوفیه های ما هم در همین زمان بوچه خونه سادش احافیس بیرین گرفتن پس خوب دقت بکنید نه اون راه دروی که اصطاق مطلقا رفتن و اون این که اون بحث فهرستی رو به اجال ک این به نظر ما تمامه نه این رادیو رو اخباری ها رفتن ما اگر به ثمانیم از ترمیناهای ما میره. ما این دوتا رو از هم تفکیش بکنیم چون تا حالا نشده در رجالشیه این برای اولین بار ترمیم ما شخصیت مفذر رو با عنوان معلق و کتاب یک جا بگذاریم شخصیت مفذر رو با عنوان راهی جایی بگذاریم مثلا الان در این حضر چهی مشکلات میکنه این را مثلا الان آمدن گفتن فضل سکونی ثقرد اده ازش نام کنم کنم مثل جمیله به دراز نوز و فضالت نعیوب یا جمیل جمیل در, فضالت نحیو. فضالت نحیو جمی جمی در کل کتاب عروره اگر فراموش نکنه اون را آن نقافن کامپیتر دو مورد از سکونی نرمون میکنه فضال یا دو مورد سه مورد مثلا لذا ما گفتیم روایات جمیل از سکونی روایته کتاب سکونی نیست این دو تا با هم فرق ریزه. اونی که ما الان محل اطلاع ماست کتاب سکونیه نوپری راوی کتابه این دو تا با هم خلق نداریم پس این مزید که الان آیون و اتواری رو پیش گشیدن. یک خلفی پیدا شده مثلا روایت نوفری و انسکونی مثل جمیل انسکونی گرمدن خوبی همه خوبیه میکنن یا مثلا همه و ارزش دادن به کتاب که مثلا جمیل هم کتاب و سکونی نعب کردن نه. نه این درسته نه این درسته یک اده راوی کتاب هم یک اده شخص روایات محرد مثلا در کلی دو تن عب کردن سه ممکن است روایات جمیل رو قبول بکنید اما که کتاب سکونی بیش نزدیک شاید مثلا 1500 دو هزار روایت داشته این رفتی به کتاب سکونی را داره اینا یک نقاط در کتاب جالی اگه نگاه بکنید شاید در وقت دوم، ما این شمیز رجوع سکونی صحبت بکنیم اونجا توضیح خواهم داد مثلا حاجی نوری دیگران اسم این اده رو بودن که اینا از سکونی نرکنند این دو رو چون اون چرا رو که شیخ تلسی ادعا میکنه عمل به کتاب سکونیه نه عمل به دو سه تروادی که جمعی نقوم کرده اون که ارزش نزده دو روادی جمعی که کرده. اونی که ارزش داره نوفری ان سکونیه خب شونه نگاه که همین کتاب سکونی که از موردن به نجاشی و شیخ رخصا نسخه خوب مال در رویانه هاشو نمیتون هر دوشون ابراهیم آشن برمگله به کوفه از نوفلی از سخونی احتمال هم داره حالا ما عقیدیمون این بودن و اخیران احتمال که ابراهیم آشن در ری از نوفلی گرفته باشه چون سخ... نوفلی اواخران روشی در ری آمد خب اگر این کتاب اصحاب ما میگه کتاب سخونی مشهور معروف جا افتاده بوده بشن خب اگر این جا افتاده بود خب تریم <تصفيق> اگر تریم بسته شد بود. اگر تو کوفش ها افتاده بود این درجه اول اول شد در بغداد هم چا داشته باشه آیان بغدادی ها بود طریق داشته باشن چطور شد آن بغدادی ها مرموم شیخ و مرموم نجاشی طریقشون به سکونی میره به قوم باز به اقران و احمد برمی در از موفدی خب اینها ها بیونی کرد شما نه ارز کردم متاسفانه نه اخباری های ما و نه اصولی های ما و نه کسانی که حتی در رسائل متعدد در رجال نمیشتن کتاب در رجال نمیشتن کتاب قطور نمیشتن به این زرافت ها ترکیوه نشده فلانی کتاب داری مثلا ما چست نام ابو سعید قمات داریم یا ابو خالد قمات ابو خالد قمات نجاشی تن افر رو این اسم بره به اسم ابو خالد قمات شش یکی بر اسم نرجوشه اشتباهی کتاب میتون نسبت میده ما در محل خودش اثبات کردیم حق باشه در ابو خالد یکیه نرجوشه اشتباه کرده سه نفر رو به اسم مژو است محل که ما نه اینکه نجاشی اشتباه کرده دقت بکنید از یک مسئله نه از اون مسئله مثلا در دو موردش که ب صرفه محمد ابن سلام محمد میتور خطا اشتباه کرده اشتباه نرجوشه نیست در بادی مادر معاملات نشانه اصل خط و قلم وقتی یک چیزی به خط و قلم اسناد داده میشد اثر این خلالات یکی از مزارع خط و قلم عدم تحقیق و دقت در کار حدیثه یعنی خط و قلمی که از مشروطی در, در حدیث شناسی و شناخت احادیث و مصادر تصاحل دارند تحمل حدیث دقت در متن دقت در سند دقتی در نسخه در اینجا تساحول در این تساحول محمد به سعد هم سرایت کرده نژاشی سند از اونا به ابو خالد اما سو اسمونو زنه نمی دید نه نه اشتباه نژاشی صورت منشأ اشتباهش اینه که محمد بن او خراب کرده این نحوه بس هنوز هنوزه آموزه به داد در هیچ یک از کتا درم روی بحث اینجوری توی و حدیثی نه پس بنابراین ما بعضی از کتب هم داشتیم که احادیث معترر رو با حق قرمز و محروم معیقه این چون کمه من اینجا افز نباردن در واقع منتخبات مالسه هد نرشته که اعلمه علیه ها، علامت بذاشته که این حدیث قبول نیست حالا که یه بیشتر میشه، اون مشهه این که علامات داشته به با درشتید بگرد میکنی؟ این مطلب رو شیخ سلسی داره، نجاشی نداره که کتاب رو احلمه احلمه نه علامت گذاشتون چون این کمه این زیاد نیست من این رو اینجا از نبادم ببینید الان ما از خود مرموم شیخ باهایی که مرموم آقای شیخوار عباده شیخ باهایی میگه این اصحاب اجماع اصول داشتن از سرون اصحاب اجماع کسی بشن اصول نسبت نهده یا اصل به زراره و به محمد این مسلم اصلا کسی به ما اصل زراره کردن کتاب معنی درکر باشه باشه شواهد این طوره شورت ارسه باشه یک کتابی در جب و استطاعت بیشتون از که اونم واضح میسه اصلاحی که اونم این منشهش از کجا بوده بیدن اصول عربرمه از یک طرف اینام بزرگان از خواب از یک طرف پس اصول ما لیدانسیم یک ای نت مشکل آن اخواری ها و این شباهدی رو که مرمون شیخ حر عاملی در اینجا آوردن این با واقعیت های خارجی ما نمیزازه راسته مثلا خود علامه بعد از این حالا به کتاب رجال نوشته و عبارات نجاشی باورده با این که نجاشی کتابش فهرسته هیچ نقطه فهرستی و علامه نظرها رو استثنان نسرگید عبارتی نقطه فهرستی علامه نداره تمام نقطه فهرستی رو حرص کن این خلاصه اقوال علامه این تمام همون رجال کشی و رجال نجاشی و این از ابن عقده و که از کجا هم گرفته از اقیقینا هم میکنون هم نون دو سه مورد ابن غذاری و که مصدر ابن غذاری هم خیلی واضح نیست کجا گرفته بقیه از نجاشی و شیف و نجاشی و و غیر از کاملا عمل واضحه و از زمان اندامه به این طرف انصافا اون چیزی که ما کار شده رجالی شده کارهای فهدسیه ما خیلی کمه اگر کسی فهرست همین فهرست اصطلاح امروز نوشتم سرذره مرو آورد نه فهرست ما هر کدام فهرست اصلاح شیعه ادله رجاله یعنی چی یعنی نگاه کردن به کتب و مساقیر از دیدگاه حکیه اینه چند بار من ارس کده الان غربی ها فهدست های مختلف علمی فهدست های تدبیقی علمی زیاد نوشن اما از این دیدگاه ننوشن نه اینکه مثلا بلد نبودن اصلا چون حجیت در ما مقبر نیست چون دبایت ما بر ما معناه نبید که میشه کاری که ما کردیم فهرست کتب دیگاه حجیته من چند بار یعنی که حتا برمیام نذارم یکی دو تا نشوا بله میخوان چون اونم بحث حجیت در جو نیست مثلا درباره به, به دید حجیت نگاه میکنه لذا خو اینا این ما مشی از نمیذونن شو اول هیچ یعنی شو در در داخل کتاباشو مثلا من تقدیم اگر از انسان بهش برداره شاد میل روز یک نیگه از سوش در بیاد و کار درسی ما اما اونها اعتناب این نکرد که وقتی یه توضیح تو پس بنابراین اینه که مرمون صاحب وسائل و, و نقل کرده از عبارات وقتی نگاه میکنید اینا دقیق میتونه مشکل کار اینه خیلی از قرار موجود بوده الان در وقتبست ما نیست نسخ مختلف بوده از سران ابن نو بن‌نیشی تاکید میکنه که کتب اون سه تا نسخه و تو باید با دقت هر مطلبی رو از یک نسخه, هم نسخه نصفت به همون نسخه نسبت بدید. نسخه دیگه نسبت ندید. خب الان در اختیار ما اینها نیستش کل کپی شده ماجرا در اختیار ما نیست. غم و غمت اختلاف نسخه منchet الان همین کتاب به نام این اصول فقه 13 است که از زمان نوری وری همان 16 بحث چاپ شده این وقتا هم اصول فقه درشان تا جواب حالا هست الله اکبر عزیزی که الان در کتاب خری ما موجود نیست درونه که هر کی در کتاب وجود اله ما ان شاء الله این وقتا حالا این اولیش هم نسخه داره نسخه در عمر مثلا بعد نسخه در نسخه, نسخه دیگه هست حالا تو ذهنم نیست بعد نیست اما این هم برنامه وجاده به ما نسیده پس بنابراین مشکلی که ما داریم مشکل اینه که مصادر اولیه اصحاب هم در بغداد مکتب اول بغداد تمهیز شد و تمغیر شد هم تو مکتب دو... قب تمهیز شد هم توی تمهیز نهایی تو مکتب دوم بغداد بود و در این تمهیز ها خب، یا اون نسخه قبول نمی یا این نسخه مثلا اختلاف قرآت داشت مختلف قرآت شده بود یا اصلا یک روایت کلن نبود ارز کردم یکی از مشکلات این بود که اگر یک مرتبی رو مثبت میکردن. می در باب حد سرقه که اگر برگردیم مبانی تکیمین مرمون استاد داره که اگر ساری یک مرتبی اتراک کرد دست کلده میشه این یه روایت مفصلیه مرمون شیخ طوسی عورده مثلا سه فبره سه فسمت سه فشه این تو بخش وسطشه که لون نساره هرمون در رفتن واحد بخش اول و دومش در کافی من کافی دو بخشی آورده این وقت که داره مرد در واحده کافی نیمونده چه برده؟ خب مرمون اصدادم چون حجیز خبری خبری بایدن یه سهب بزنم این سهب مرتبار اصدامم خب ما بخشی اینه که ببینیم در همین روایت بایده روایت بایده همه است در که کار کافی این حالا کاری قبول تختی خیلی اولش اولشو اوورده وسطش نه اوورده آخرشم آورده. شیخ سوسی هسته بسمه خوشتر هم اوورده اصحاب هم فتباشون که به مقره واحده لا صخفه. اصحاب فتباشون همینه آه خوبی هم می سند در تحضی وارسه و سعیه و عمل اصحاب هم تحصیل نهاره فکر هم دهنشون اصحاب به مقره واحده سخت پیاده بود درشون پس این مطلب که ایشون خیال می شواهد الان موجوده البته این راهی روی شما رفتیم یعنی ما آمون این مقارنه بین فهارس کردیم با روایات مثلا مثل این انس انسترکونی این کتاب شه. جمیل انسترکونی نه روایات مفرده است تا شفاها نسترکونی شده یا اگر از کتابش بوده اگر بوده هم یکی قبول داشت دو تا قبول باشت اگر هم بوده احتمال هم به زنب شفایی باشی آمدید بین اینها رو فرق داشی ازاسه خیلی کار مشکلیه انضافت طول زمان برده دقیقا مقدار اونها در دست ما نیست بعد از مسادر غیه حدیثی ما همین کتاب کشی خیلی این کتاب بردیشه از انضافت به کتاب عجیب و این کتاب و کشی خیلی حالا ما نمیتونی نسخه بیشتر به هم بوده نوسه اصلیش کمتر بوده شکل بیشتر به هموشتر واقعا نمیدونیم مثلا ما متحیلیم خیلی قلط و قلط معنوی و لحظی و املاعی که زیاد قلط های املاعی که زیاد بسا بد نرشته شده صرف زیاد از کلمه کسی هم که من میدونم یه مقدار یه صرف ها و جا به جایی ها و تحریک ها رو نرشتیم اما ما هایی توستری در خامونست باز هم همه جا نرش هیل از اون موازی که ایشون نمیشه هم در کتاب کشی یا عبارت تحریف شده یا سخت داره یا زیاد چیز محشتناه که این کتاب چیز عجیب قریبیست در این جهت خودش. خوبه اینا رو ما بخوایم بگیریم که قراهن و شواهد موجوده و کفایت میکنه انصافا خیلی مشکله پس حق در مقام این است که اصولاً راه و که علامه رفته کلن یک راهه راه رو که علمای اخباری رفتن یک راهه و این دوتا رو نباید با هم خلق کرد و انصافن راه رو که علام رفته هم اشکال علمی پیلسه داره چون اصل حجیعت روشن نیست هم اشکال علمی با واقعیت معارف دینی ما نمی سازه شیعه نمی سازه این اشکال داره و اما اون که اخباری رو گفتن با واقع علمی مسادر موجود ما نمی سازه. این شواهدی رو که کردن این با واقع علمی نمی و هفت این است که ما باید شواهد رو جمع بکنیم هر شاره دو خودش قرار آرادیم تا به یک نتیجه گیری داریم